و آله طیبین و قاهرین معصومین دائمت اللهم افرنا جمعی المشتغلین و یا عرحم الراحمین عرض شد که متعرضه یه مقدار از کلمات راجع به سکونی و از کنیم بعد مناقشاتی که اولا اصلا مطلب رو علامه شروع این رو شون دحس و کیسه و کیسه شروع شد اما دیگه اوکی بحث ها توسط اخباری ها و آن که بعد از این آمدن این خیلی ما دنها کارهای زیادی شد که قبلن ما سابقه نداشتیم مخصوصا بیشتر او جمعه تحلیلی و تحصیلی و اینها خیلی واقعا زهنه ها زیادی پیشته شده ما برای این سید تاریخی مقداری محکوز در برد از موارد متعرض باشیم در کتاب این آیه کتازه چاپ کنند رامر چون از تحقیقات محکوم سید داماد و حدوی نهالی کرده بخشیم برای این عباده ایشان رو بیادیم اینجا دیوز در وقتی گذشته عبادت مرموم مجلسی قدر رو بندید. که زادران در شرق رو فقیه دارد و ذکر شیخ عددش محط طاقه عمل در روز سکونی ایشون این مقدار رو آوردن و بسطقه های محمدت به معتبه و که هم نبوله باول شک معروم مجلسی پدر عبارت صدوق رو لا به بماید به دو کلینی و عبارت ابن ازریس هم نبوله و حکم کلینی و صدوق به صحت خبر اینم به خاطر همون توصیح عام می که این یعنی توصیح عام می که در اول کتاب رو مال صدوق رو هم من اون روز این بحث مطرح افیادم راسته در مواردی صدوق از کتاب سکونی عوضه اما از مال صدوق زیاد نیست به مقدار ش... کلینی کلین بیشترینش به همون طریق نوفلی غیر نوفلی هم کم داره هست کم در کتاب مرموم توسی از یک جهن باز بیشتر چون در کتاب شیفتوسی پس از کتاب محمد در یعنی محبوب نرم از کتاب محمد احمد زیادتر نهامده کلینی هم داره اونیشون بیشتر نهامده از یک ایدت مسادر نهامده میکنه که در کلینی نهامده و سروب در کل فقیر یک جا توقف رو داره لا افتی به مایانتر رو به حسکونی اما بقیه جاها که نیست عبود کرده ایشون اون یک جا هم نهامده و ظاهر هنهما وجده هفی و اصله این نواد بخون میمازیم این تکبر رو رو کنیم برای این وجده هفی اصله رو هم اگر رو جده هفی کتابه بهتر بود وجده هفی کتابه باسته از این مطلب این شاهده توضیح میدیم که بدانیشان کتاب سکونی در کاملا کامیلا جمع یفته وجده هفی و, و, و اما اینکه این اصله میقبول این بود که تحبیر از کتاب به اصلی در کلام ابن ادریس آمده ما در کتاب نجاشی یا کتاب شکتوسی از کتاب سکنونی تحبیر به اصل نداری اشکال اینه. و ولدی یقل با حالظن هنهو کان امامی هم به بسیدید پس از زمان شیف مثلا در قده یا, یا افتاد علامه و دیگران و شیف که ایشون سنیه یه باشه آشه ازدهی رفته بوده که ایک اون شیعه رو خوندیم از کلمات مرگوم آجی نوری در مستدرد شواهد و تشعیرش رو خوند لیکن کان بین الامه و کان یه تقییمه چون مشهور بوده بین الامه تقییه میکرده به حسب ظاهر شیعه رو حالا این مشهر ایشون من نمیدونم چون تو رواز آمه شیعه باید داره ایشون بله نداره. داره بعد نیست از عزیزه نرکده همه هم گفتن که احادیث منکر داره و تضعیفش کنم بوده اتخاب توی سه هایشون هم بنزر ابن ماجه بنزر هم قدون هم اونه حدیث داد او بردم حدیثش هم لرنمون روی ارنمو بی جمعی عباب فرد و کان لایتقی و کان علیه السلام لرنمون روان شد باشه روان با صادق علیه السلام بی جمعی عباب فرد و کان الله یک و یه ان انه ها جل مایو خالفه خیلی گرده که مخالف آمه است اشون نه حالا این محلیت که چه میبذارش موافق با است یا مخالف آمه و ارسای میاه در موافقه مخالف چیه شاید تو بحث های روشن در بشه این هم کلامی که محروم مجلسی و الله تعالی علی در این باره پرس از کلمات دیگری ای که ایشان آوردن قال از سنت مسابی مرمون بحرال علوم این توی فرایز رجالیشون آموزه مسابیه کتابه بلهیشون هم فکر میکنم شد مسابیه نبید رجال چون توی فرایز رجالی بحرال هم هستی نیبارد در در سفر فخر محفظین ایزا آز از فنر به توصیح. ایشون از فخر محفظین شروع می‌کنه. من شب که قبل از سفر المحققین پدری ایشون علامه تفهر محمدتفر علامه است و قبل از الانام دایی ایشون معتبر محقق الحیدری در حقیقت ایشون دقیقاً راستن سرمنشأ تفسی مرحوم عقیل الحیدری اون منشأ اساسی بله بله پس سفر المحققین که سر اننامه علامه, علامه شاگرد محقق فاصله داره اصل شمال فخر محقید نزمان رونابس و قال فخر محقید احترد شیخ مواربا و انستکونی فلموسط از این که این تعابی که رو شیخ موسط به صحیح به زدیل یاره صدوق این رو پدر فخر محقید در شیعه ما قضا دیشون نداریم تا من میدونم اطلاعات من اینه که اولین کسی که روایاتو در فقر تقسیل کرد ایشون مرحوم الله هست پدر فخرون مرحیم آلا از صحبت من میته و کرد الى آخر حدیث ما اگر یاد داغیم باشی باشیم که تکیمی شده نباشیم یه پاسته زمانی شد در بحث صحب که از کرد مرحوم آقای بروجردی قدس الله و سره آلا ما این کتاب رو باید روژیه در جامعال احادیث یه بابی داره به نام باب ماوردی فی انواع سقط اصلا روایات سقط رو یک جا جمع کرده اگر یادوارتون باشه و این کار در وسائل نشده در وسائل این کار نکرده اما در کتاب جمال اعادی سعد ما در اونجا دست بندی کردیم گفتیم مجموعه روایات روایاتی که در باب سقط چند تا است یکی وازه عمار عمار المروانی که روتی سکونی نه اونجا توضیح هم داریم که متن شکونی هم مختلفه. یک متن چون توضیح هایی بحث مکاتب سالانه افتیه یه سکرش دوشه و تبر و علاوانه افن عبد جمهور فیدور ارلالی چاپ, چاپ, چاپ نشده از بزر بازار تحقیق کردن آماده چاپ برمان همه چاپ نشده از کتاب هایی شد که چاپ شده اون کتاب هسته مجلس مجلی نبینی شده من از بازم همه و کتاب علاقصاب از برای چند سی سال بیا چندین جا اجازاتی یا نهایت کتاب از ما از ابن جمهور موجوده فعلا سرکی از از آلمانیه کجاست کارش ابن عوی مقال مفصل راجبه این اجازات ابن جمهور جمع کرده کار می کنم باید خودش بله اسمشون نموسته بله ایشو در اونجا چندتا از این اجازات رو که ایشون امضا کرده یا اول موزیا پایان این کتاب رو در بعضی ابن عبد جمهوره در بعضی ابن عبد ابن جمهوره من همونه زرفم لیکی مرزون جده هم جده اول جمهوره یا اول جمهوره چون بین که امزایی بیشان هست که اجازاته مقاله نیوشنال جمع کرد از مسخفی بعد این زخمه هی چیزه کرد هلا این در اونجا اسم جدیهیشون ایشون من هنوز نبه میدم ابوال جمهوره ابوال جمهور یا جمهور چون به خط خودشون ابن جمهورم هست ابن نبی جمهورم هست است دو هست بر که اول آزاده که ابن نبی جمهور فیدورال اللهعالی از از خیلی عجیبی اسم که در خودم اول اللهعالی اما پیشون میشه اول اللهعالی گوده شد, شد. بعد بعدی و از بعدی گفتن ایش شبه خودمو مح رستش که در حوال لالی گفتن لولو رو که یعنی آلین یعنی خالی حلایه های گرامبه ها لولوهای گرامبه ها حوال لالی حوالیه بالا والا خب که نیده بالا بسن گرامبه به نظر این یکی نمی کنید که اول کنم خود دور لالی هم خود دور که معروف لولو هم که معروف هر دو سنگ هر دو چیزه گرام قیمت یه نمیده لولوی در روالالی اصلا مرمان نمیده مگر از در بوده خود محلفش دواله باشه حدا که اگر اگه اسم کتاب هم درستش رو خوبه اسم اون کتاب درست کرده اسم کتاب هم بگه اینه از دور روالالالالی بگه باز بهتر بکنه و طبعه هم هم از آداله گرم نوی جمهودی مثلا توی تواجه جالی و داره سلوه رو چاپ رو و خلی و الراعیون هاشم و قومی. دیگه اینا ارز کردم چرا را مردیست و از به احترام مثلا ایشون توصیح کرده که از محصنیشان در قرن 11 همه به بعد دهم همه نخصد دیگه هزار وقت را که و نهود نخصد و سر و خود پر این و ایشون بعدش خود شوشندیست که وزیشون نامونتر تره مخصوصا مخصوص که قطعا وزیشون نتر از میشه و نقل از شیخ قدر اتفاق از طارق از عمل به رویات سکونی فی مالمیون که اینجا چاپ شده لنیون که این قلعه چاپ شده فی و, خلاف و این زید ابروه که من از ها عمل میکنن به روایت سکونی ایما لم یونکه بود اگر اون روایت منکر نباشه و لم یکان انده هم خلافه ظاهرن نمیونی کنونه فتوا بر علیش نباشه لم یکان انده هم خلافه روایت بر حاله نباشه یعنی در روایت سکونی جای عمل میکنن که روایتی از طریق شیعه به خلافش نباشه و از حتوای شیعه هم به خلافشه. موت قد حالا ارز کردم این یک عبارت یک عبارت هم از صدوق لا افتیم و ماینتر دوبر ارز تا اینجا اینجا تو نیشونی این توضیح نهدن یک عبارت هم مرمون از توستری کنیم مرمونهای توستری در قامل سلوشان میگو که عبارت شیست با عبارت صدوق معنیش یکیه ماینتر دوبر یعنی مادمیون که رو برمیه کنه اندام خلافو یکی مرمون توستری هر دو عبارت و رو با شیط توصیه یکی پس یه بحثم اینه که این عبارت یعنی چی عبارت صدور یعنی چی اینا دو تا هم یا یکی هم چون ما باشیم و ظاهر عبارت خب این که ایشون متلمیون که رو برای میخوان اندام خلاف این سکونی منفرد باشه دیگه داشت که اینطوره یعنی ما جایی رو باشه سکونی قبول که منکر هموشه در چایطه سلام نباشه و در کار کتاب روایت در خلاق نباشه پس قاعدتا ما میگیم شخص منفرده دیگه خود، خودش منفرد میشه. وقتی روایت از کار کتاب و اصلا هم یه به منفرادات ایشون عمل نمیشه. این چیزیه که باید شما بجنبونید با عبارت شعر. این هم راج به مرقوم سیر درو و انصافاً این توابع جاری ایشان استاد زمان ایشان در نقدن وصائر مثلا محمود زهرونی که مشهر و طبیه مرد بزرگواریست با من به رلوم انصافه مرد و چه قدرت شعری این شعریتی در فقدار منظومش من واقعا پوکر آده از انصافه مرد العاده آده از های مختلف جهات مختلف مرد بزرگواری یکی از جهاتی که خیلی ایشون رو ممتاز کرد در زرت خودش همین تحقیقات رجالی ایشانه بعضی قسمتاش خیلی زحمت کشید من به این مناسبت مدتای ایشتاب نگاه نکنید باید وگه این با موارد مختلفی مختلف به کتاب انصاف هم اگر نخواب موافق هم با ایشون در موانشون این مختصر حقای ایشون در ستونیه این که الان اینجا خونده ایشون هم در این کتاب فوائد خیلی زحمه کشیدن حقای اقا و مرد پخته ای هم و بعضی از مطالبی که واقعا خیلی پیش دیدن در بابه اصاب خیلی نفیصه در باب مشایط نجاشی بسته خیلی مفسری دارن بعضا شما آفر نیستیم بایشون اما به هر حال یا توضیحات ایشون کافی نمیدونیم اما خیلی زحمت کشنه انصافا مرد خوب عاده بزرگواری هست مثل مرموم نگامات که خوندیم هم از جهات معهولی و فلسفه و حکمانشوین ها خودیشان در جهات تخبر رجالی هم خیلی کار کردن ندفعی ه ملا در داره شارع اصول کافی که داره خب اولش بحث سندیم داره که مثل استدلالشون میردام بحث سندی هم داره ایشون اما بحث سندیشون خیلی ضعیفه میردام خب معلومه نیست بعد یه واژه بحثه معنی حدیث و مسئله حدیثا میشه اما اگر بخیل مقایسه ما دو خیلی سوف بخیل مقایسه کنیم انصافا میردامات حساب مرحوم ملاصدرا قابل قیاس نیست خیلی و مرحوم بهرور هم همینطور مثلا بهرو رو مازیم حالا با اینکه بعدشونا متأخره با فرض که مثلا مرحوم شهریار طرفی کارش با مرحوم صاب جواهه واقعا قابل قیاس نیست خیلی زحمت خوبی در این کتاب رجال کشید این هم یکی که یعنی در اینجا خوبی این کتابی مقدار از اقوال از زمان به اصطلاح اخباری ها تا زمان تقریبا قرن سیزده هم هزار دیست و و رو پیشانه جمع بعد از کلماتی که از مرحوم هزار جریبی قال عجل على اجل محمد قاسم هزار جریبی اعلام انهو قد شهر بین اکثر از خواب و قبر رواه اسمایل بن زیاد سکونی اسمایل بن زیاد مر... گفته شده ما معروف سرش اسمایل ابن علی زیاده از در کتب احل سنه یه اسماعیون نویزی ها دیگه هم هست ادهی از این کتاب ما با این اشتباه گرفتن یه اسماعیون مصرده یه هم هست ادهی از کتاب ما با این اشتباه گرفتن جالت باردون بحثی همی زدیده چیشون از بحث ما خارجی گفته شده ایشون اسم پدریزی ها که معروح مشهور این است که نه حبوزی ده زیاد به اسمش مسلم اسماعیون هست و قد اده شیخ و کتابه وندا که من جماعته به طلسیقه. این من عین عبارات میخوام بگم که لوز بر اثر گذشت زمان چطور مطلب شیخ رضاده نگفته این شیخ یه روایت شیخ روایت زاهدی که مرتضیون که امام صادق فرمودن اگر شيئی داشتی به به مروان علیه بعد به زاد عملت طایفه به اخبار باشه این عدد داره به توسیقه کده این عباد که که این عباده شیخ در خود و که مواز عدیدم این کتبه اِنَّا لِ امامیه اجماع از به ما یروی حسد و امار صحاباتی لِ ادالتِ که با اجماع که تو زمان اونها مثلا خونده که به توابیل موقفه از اجماع یاد میشه من همون دارم چه رو میکنم و اول اجماع رو چه همیزه خود دلیل اونا اجماع الفقه و اخبار بعد جا میگه و در ذهبه اکثر اصحاب اجماع قبول اینجا میگه عملت طارقه بعد از اون روایت نکنید اینه هم قدر اجماع به توصیه رویدیم لحظه بعد اون روایت اون روایت هم نداشت اونا برایم اجماع بوده اجازه به فرمایید اجازه به اون روایت اون رو شیخ گرد امام صادق نهر شده امام فرماید نگه چیزی نداشتید از روایت ما برگردیم به ما روا وان علیه فهمه رو دوید این که توشنا دار توصیه ولذا عمل از تارف برو نیست. خب در و قبول تو خب همین میخوام بگم چی نوشته؟ چی نوشته انا بقدر اجماع بتوصیه. قبول ندارم ان اجماع خب این اجماع شد حاطر به خاطر به خاطر تعهد رو روایت باشه. بعد عمل ثابته میگم اون اجماع یعنی حالا عمل ثابته رو هم قبول کردی. بعدش عمل ثابته هست عملا نمیبینیم خب. ما مثلا بغدادی ها رو میبینن عمل نکردن. این عمل ثابته است. مغزادی ها مثل ابن عبی آمر شما شاید مثلا که ما تالا پیدا کردیم حسین سعید به واسطه فضال نموی یه دونه حدیثه اینجور هم قدر اینا نیامدن مطلب رو تحریز بکنم خب اینو این همه زحمت کشیده شد اولا نمه عباس شیشه بگیدن این ست، ست سال من هدف اصاسیم اینه بعدا نه همه خب بیان بیشتری بکنن بله ما ارز خواهیم کرد این کتاب سکونیه از زمان اوارم حاشم که قمعامل مشکول بشه قمعامل قمعامل قبول, قبول میکنم با اختلافی بگنید کلیمی بیشتر عمل میکنه صدوکم با اختلاف کنید نیست اما همین کتاب در کوفه جا نمی همین کتاب در بغداد جا نمی آفته خب ایش اجماع اصحابه. برای این چی جور خبری هستن این شالا خواهیم گفت بیدار دیگم احرس کردیم چون بخشون تشناه داشتیم ایشون میگه اگر روایت در طریق ما نبود نگاه این به ما روابان علیه خب این روایت سکنی که هم جربر، هم عبی، هم آقای، علیه اینه از طریق ما نبود این چی این ازا یعنی چی؟ ازا ما این نمیپنیم این چی؟ دقیق بله اگر فنسی یک حدیثی در تکاب بخاری از علیه بود این میشه گفت که این وقتی وقتی نوستی سنیان علیه هم این معفوله اما میگه اگر از ما حدیث نبود فنس رو الان ما رو آقا علیه هم سنی هم به و لذا عمل از به برواز سکونی و خیاسب نکلو روایت قیاسمون کلوم اینجوری انه اصحاقیم نعمار انه عبی عبدالله انه عبیه انه آبای انه علیه قار قار رسول الله اینکه چی شد من نیم فهمم اینکه همش اغلبه دیگه شیق توسی یکی حدیثی رو برده که ما جایی دیگه مطلقا نکردیم این یکی دو اصلا خب اون حدیث شرفتی بیم <تصفح> ایبارادی شیخ توصی خودش ایبارهام داره. یعنی باز خود مرمرشید میان شهر نما کنیم که نیست. ایبارت میفهمینش. این از این عبارت این جور سیر کرده و تو کتاب آداب القول من جماعت این اقدار اجماع به توصیه. خود اجماع. این یعنی عبارت چیه اون مطلب چیه؟ من چرا میخونم چهارم. چهارم میخوام دکتر خودم مراجعه کنم. میخوام براتون روشن بشه که گریز چهارصد سال چهارصد سال سال رجال شیعه افتاد به تحریک نهی به خودشون این زندرزا تا او که من دیدم اولین کسی که رو مثل مراجعه میکنه مرحوم توسطری دیگه ما با باید که در کتابا خود ببینه یعنی هم چی به توسیق مزاره اولین کسی که از عبادشه توسیق فهمیده دیگه مرحوم محطه در, در معتبره سال مثلا مثل شیز هفصد. قبل 760 رو خورده شون پسطاد علامه از اون وقت آمده تا این زمان ماهوده هفت ست سال این دیگه عباره مثلا این چیز داره به قدیب مواز عدیده من کتبه این نر امامیه عجمه و عرل عمله به مایرویه سکونی و امار ساباتیل ادارت مو اصلا نگفتویشون هم چه از کنه مثلا همچی وقت مواز عدیده من کتبه ازا شما دقت بکنیم این مواز عدیده من کتبه این رو که اومده گفته اینو در مسائل عزیه مرحوم مرحوم شیخ محقق و قال شیخ ابو جعفر فی مواطن ان الامامیه اجماعتون انا لعمل به ما یری حصه خونی و عمار و من ما سلموا معاملات ثقات این دو دلیل ادالته اینو همون عبارت مسائل عزیه مرحوم درست نیست. هم این که نقل این مرزین کرده اینم با است. بر از ذکر محقق کتاب نهایی مساله هم به او قال لاعتمادی این عبارت نکته رو اینجا بله بله بله بله بله بله برای رواست المسایل ازدین هم خود بید رواست و تحر ولای و تحر یا ید خور ولای و تحر زبس رواست مختلفه و قار انقیل انهاد روای رای و تون قلما نستکنی و امکانم در آمه لیکن نهو منصفات رواست این ببینید دقت ای کنید ما آمدیم برای توجیه کلام محقق گفتیم محقق استظهار کردیم این برنا. این خوبه یعنی محقق از اون عبارت فهمیده حالا که عمل به طائفه دراز سکونی این بخواهد اینکه ایشون فقط این بیم خوب خوبه به محقق اشغال وارد نمیشه. دقت کنید. استظهار محققه. میگه حالا که اصحاب عمل کردن نقطه عمل رسافت. خب این باز اینجوری بگیم بله وقت کان شیخون الالان خاتمون مشتهدین المولا محمد باقر مجلسی یعتمد علا ما روان الا و ما کان زعفو ثابتا محققا انده فیحتمال ان یکون المراد به بود به وعث خوابنا که من زعف روایتهی زعفها به نسبت الى خبر اقوامینه یه خبری که اقوام باشه ضعیفه از کرد شیختا تحکیل میکنه از خواب ما جایی به خبر سکونی اول که ما روایت نداشت روشیم اقوامه نباشه عبون این عبون ایشان البته ولو معلق با خودشه اما این خلاصه افکار همین مختلف اسمهان قدرس مختلف اسمهان در مخصوصا بعد از مرمومه هم میره دامال از دکتر بعد مرمومه کلباسی و ازدهی خیلی مواهد رجال مرمومه از به خصوص مرمومه در ازلام خواهی شیخ مآب و تاجدار قوالی لغت روز شد توی مسائل عرفان ورثه حق در خوانه مؤتمدا و ومؤتبران اندبو از اصحاب حالا که شیخ و محقق و فخر معتقدین این هم یه راهی بوده در قده از کتب در سابق این ها داره سعی کردن احصار اقوال میکنن همین کتاب مرحوم ماوگالی اول ها دیده یکی از نقاط موسویتش کهسته نقل از کتب رجالیه و قال و و قال و قال و قال و قال و قال و قال و قال که قال و اصلا و قال و قال این قال و قال و قال و قال و یکی از قال و قال و قال و قال و قال من خود منم که کم براجم اینو مسائل بشه اگه بخوام نگاه کنم حالا من چند نگاهی کنم چند تا نگاه اگر بخوام یه خواب کنم بعد کتاب برام واقعا چون زیاد نامه میکنه از مسائل به خلاف مرحوم استاد من فرصت انی کردن اینها منابع اولیه ندارم بعدش نظر نه حالا کی به این طرف و اون طرفه خیلی احشینه حالا ایشون اسم این یک روشی بوده میخوام بگم این خیال نکرنم کشه چون این اسما رو میارن و زیاد میشه میگن پس خب این آقا دیگه تقریبا اجماعیه که قصدیه این همه بزاردان گفتن که چی میشه کسی مخالفت بودن حالا اسمایی رفیشون رو بردن کشیخ و المحقق و فخر محققین و المجلسیه و سی لسن بحرولون و فازل دامان میردامان و فازل غزار جریبی و کلینی و صدوق. دقیقی نهی پس هم اسما میارم. بله حوال مشهور هند المتاخلی ولا یب او اگدعا و اتفاقی هم علا داره من بعد زمان سید داماد الازمان اینا حالا الا ما من ماشد هم و ندر و یه در هم من از که این کتابی که میگذاشم رسائل فوادر جالی منون خاتوی و بعد مشایخ مشایخ نام. از که من خود ایشون شده مکتب اصفهان، اینا بزرگان مکتب اصفهان در اون زمان من هم از سید و سند و رشی منون شدید مرمون شاید برسانده اصافتن از چیم و الفازل کلباسی ظاهرم مرادش از فازل کلباسی اول مالی پسر محومه کلباسی اول باشه بل منصادت مشایخ نایده و نقل خلطون من ال اجلا و غوه ال اتفاق دقیق کردید ایر, ایر از خلا تحریقات و غیر از ازا ایما سعی کردن تیما بعد اقوال را هم جمع بکنن من محسن میخونن میخوام که شما هم مثلا بعد از این راه قرنوشتون را را روشن بکنه. اول خودی اصلا انقلابو له گیا. اصلا دو این حالت باب بحث تو اجاله تو چی و چی گفت این ادعایشون چرا؟ چون اعتقادش این بوده که وقتی ما جمع بکنیم برای ما وصول پیدا میشه. و نقل سنتهم الا الله و هو الاتفاق اجماعی است نه. انا له اجماع علارمایتی و نفسی و کمیث ثقطن معتمداله صراعت ماده با این اجماع دین ازن خلاف بعض از اجلا نظریه اجماع از یک می با اجماع که خیلی در حالا هم چون اجماع شده ظاهر کن از بله ایزن ازلیت به المقام و ننافی امامیت بود الا ماقیل منکونی این مخلوطا محل آمنه این مخلوطا محل آمنه رو متاخلی در عنوانت مجلسی که در خودم بوده مرموم شیع هسته بگه آمنی رو نمونتون مخلوطا محل آمنه بگه این محلوطا محل رو مرموم مجلسی در شرح فقیح فرموزن حالایی و واقعا غیر موضوع داری که ما من کلام المحدر خليل ماجدي اصلا این توجیه بود نه که جماعره بله و هوض ظاهر من تصیح کلیه و صدوب الخبر الذي هو في این یک مقدمات ذهنی داره میگن چون مرحوم کلینی در مقدمه کافی گفته بلا آثار صحیحه و صحیح هم در اصطلاح به از اون حدیثی که جمعی اراباتش امامی و عدل باشند پس در حقیقت کلینی مخصر به یک هم امامیه هم. و همچین در عبارت سلو با خب این یه عجیب هست مثل این آبایی که عم در رجال کار کرده این اصطلاح که صحیح با راویش امامیه هدل باشه این اصطلاح علامه است در قرن هشتون <تصفح> عبارت کلینی در قرن چارم هست اول قرن چارم هست. عبارت کلینی الاثار صحیحه در اول کتاب این مال قرن چهارمه این اصطلاح که صحیح یعنی با راویش امامی و عادل باشه این مال قرن 8ه خلق کردن آن بین دو تا اصطلاح در اون زمان رسم نبوده که بگن صحیح یعنی حدیثی که راویش امامی و عادل باشه ما کردم در همین کتابش سال صدوق عبدالله الله صل الله علیه حدیث هست که هم سنیه هم آخر سند هم برده به ابو حالیه آن بخواد نگاهتا بخش سومش استحباب سه روز لیال ایامال البیز هر ماه چون آدم وقتی که گناه مرتکب رو از شکارش بزنی شده کار بشه توب کن روزه گرفت یک سورتش سفید شد 14 روزه گرفت یه سومگیه این حدیث و برای استحباب صوم این ایام البیز به اصطلاح این مرمون صادق توی علال و شرایط بعدم بیگه افغال مصنف ها و حدیث صحیحه سهی هم تحبیل ما هست که من از افغال احالو سناسی یک چیز مذاخره بیشه اونسه خب بیگه ها و حدیث ها نه اینکه که کیال کوتاهی کرده سهی به لحاظ مجموعی شباهه به لحاظ تلقی از مشایخ به لحاظ استحباب به لحاظ مضمون خوب آدم روزه بگیره به روز روز دیگه مرادش این هستهی نه مرادش اصطلاح علامه هلی عبارت کلینی در اول قرن چهارمه عبارت صدوق در اواخر قرن چهارمه هیچ کدومشه نمیشه با تفسیر علامه تفسیر کرد این مشکل این آقایونه ایشون که به حوض ظاهر من تصیح کلینی و صدوق الذي هون فیسنده کلینی هم نکرد نکرده کلین ربایتشو عورده چون در مقدمه گفته به آثار سعیه بس اینا فهمدن تصدیل کرده و هو از ظاهر من بعد مشاریخ مشاریخ نده اجلا المتبهری فلعلوم شاید مراد مهم کلباسی باشه فلعلوم العقلیت و مقلی لاسی ما فیهاد العلم که ایشون سر هست و ننعم مابال المولا الاجل هین مذاکره ایشون پسر مرومه ایشون مرحوم محمد کرباسی غیر از عبال معالی عبال معالی محمد ایشون محمد تا اونجایی که من میدونم آرای ایشون چاپ نشده ایشان میشه با حالا حاج آقا محمد نجد و خاضر کلباسی ایشون چاپ نشده این کتاب داره در اده از مرحوم آرای این مرحوم بود داره ولی من نعم ما قال این از علماء و مشایخ اصفهانه که آرایش شعلا دوما نرسیده تا هنال مذاکره تو بحث مجلس بس، اندم ان لحظه اوها علا الاجللا، ممالایم در رای بفیکونیه سکته رو مات می‌دارم. می‌شن کرد سر هم از فلان فلان فلان گیری من و اوها علا الاجللا، ممالایم در رای بفیکونیه سکته رو من اینو این راها بارد نمیشه. بالاكي كي کی گفت بوخود ایش نگاه میکنه چه بی گوتو ناهم گوتو سرا قبول داده قبول داده نا قبول نه دیگه این راه ها بله در بله. من من لا یاندهی ارغب و فیکون هست را تن و معتمدن ارکم تبع و رو... تبع حروف ال علم توحر پیدا کرده مثل دریایی بس تو و کم بعد از اون جهده ها فی تحقیق احوال روا وقد بلغ فی ازلک اقصى مراتب جهد دیگه حالا برداشتن به توصیف این آرونی که موسقه مثل سهر داماد و مجلسیه این روینا و انتهو الامون ته المشقت بل یز هر من من, من تطبق الاخبار الاتی رواستتونی انهو ما کانون الامن و اللا لم یا سهمن هر وارز امثال خاله و من دالکه هر و حال خاله این مبنا که یک ملازمه بین نوپلی و سکونی باشه این هم اجمالاً ثابته البته رو مبانی فهرستی بهتر ثابته تا مبانی رجالی چون اونچه که ما از این شواهد جمع بکنیم عمل اصحاب به کتاب سکونیه کتاب سکونی هم همین نسخه است که نوپلی نردن نسخه مشهورش شنینه یعنی اگر ما بخوایم بگیم مراله اصحاب شامل نوپلی نمیشه موظم رواد سکونی صادق میشه این رو من به لسان دیگر رو هم سابقا عرض کردیم و فوائدی هم داره ما الان افرادی داریم که مثلا غیر ازالله این مورد که نجاشی تصریح نکرده اصلا فرسوه عبدالله ابن میمون قده هم اسم برم نجاشی تصریح میکنه سقتون لحو کتابون تصریح به میکنه. و کتاب هم داره سندش را هم به ایشون میویزه به این کتاب این سند منتقی بیشه به از اشائره قوم ما این شخصی نمیشه از این نشه. جعفر بن محمد اشعری قومی ظاهران ایشون هست چون عبدالله میمون اهل مکه است قصولا اهل مکه تا امشان که من میدونم تو اهل مکه زاهران راوی حسر به فردیه تو ما مدینه چند تا راوی داریم صاحب کتاب؟ اما در مکه به نظرم عبدالله میمون منحسه الان تو ذهنم نمیاد از امامیه که در اون زمان در مکه داشته باشی منحسه به <تصفح> عبدالله میمون ظاهرم این آی جعفر ابن محمد اشعری سفری حالا حجی عمرهی رفته خدمتیشون از یک کتاب رو ازشون نمید. ما الان که برمیدنیم به, به کتاب کافی برمیدنیم به کتاب شیخ توصیر بیدن فرسم شیخ مفید تو امادی غیر. معظم روایات ما از عبدالله بن مهمون توسط همین شخص جعفر بن محمد اشعری قومی این هم نمیشنسی. شبیه این بحث بخواب بگم ما شبیه این بحث اونجا هم خوب دقت کنیم بینیم معنا نجاشی این کتاب رو ثابت میکنه کتاب عبدالله بن مهمون توسیق میکنه سه این معناش چیه معناش اینکه بیفتد عمل بکنی یعنی راهش بود جدی معناش اینکه هرگز میگه معنا داره یه سرتونی میگه فسای هم میگه مردم زندگیش تلافیه اثر رسافت بس. همین عمل به چیز دیگه هم دیگه‌ای نداره حسین کتاب رو هم شواهد دیگه قطعیه هم طریق نجاشی هست هم طریق شیخ هست هم طرق کلیمی هست هم طریق صدور اله ما شاء الله معظرمشون داره اما معظم جعفر عشقریه. جعفر بن محمد اشعری قمی لذا ممکن احتمالا وقتی نجاشی میگه لهو صدقه لهو کتاب این شأن این توصیح به ملازم شامل جعفر هم میشه نوحلی هم که پس این بحث اختصاص به نوحلی الان نمیگم بحث ما این بحث رو به کلی مطرح کردیم که اگر نجاشی کسی رو توصیف کرد و اثبات کتاب کرد به فکر کتاب هم توسط شواهد ما چه در کتاب حدیث ما چه در کتاب اجازات ما این کتاب هم توسط یک نفر ایست که توصیف من شده نکته پندیل روشن شد من معتقدم شاید دو ملازم آره به اصطلاح ملازمه این انایت نجاشی باشه که باقی بگه این شخص هم سفر چون کتاب از راه اونه ایشون اثبات کتاب کرده توصیف کرده توصیه و اثبات کتاب معنیش اینه که به این کتاب اعتماد بکنیم بروازی این کتاب اعتماد بود اعتماد اون کتاب هم مبتنی که این واسطه رو قبول بکنیم وقتی واسطه اینه ما این آقاره نمیشنسیم نه اینکه جعفت ایف داره ما این آقاره نمیشنسیم از اشاره قوم بوده حرب بوده رفته در مکه چونم عرب بوده کتابش رو نهاره کرده چیه نم اما بحثی نمی‌کنیم خود نجاشی تری بشینه شیخ هم به ذهن ما نایزات نمیاد نجیاشی کیه تری بشینه صدوق علامه ماشاءالله ارزشش زیاد داره جابر محمد هم عبدالله بن میمن تو کتابه امالی معاملات کتاب متفرقه در کتاب ارجم هست در کتاب ارجم هست لذا این مطلب و منزله از ارحال نوغلی ایزان که اگر شیخ بگه اصحاب ما به کتاب عمل کرده‌اند خود نوفلی هم توصیح نتیجهش خوب دقت کنید نتیجهش این میشه که اگر نوفلی انستکونی باشه اینجا اعتماد میکنید به نوفلی اما نوفلی انز زراره نه دیگه اعتماد نمیشه چون نوفلی رو ما به عنوان توصیه نگردیم نوفلی رو در ذل سکونی توصیه کردیم دقیق میکن؟ این نتیجهش این میشه که اگر حدیث برای اینجور نوفری هم زراره دیگه ما قبول نیست مشکل داره تو... نوفری توسیق هم اما نوفری هم از قبول کنیم چون برای از اون ترجم مهمی شید چون یه جه قبول کنید چون ما نوفری رو توسیق نکردیم آمدیم گفتیم نوفری جایی که از کتاب سکون نرخه این کتاب معتمده آن نوفری نوفری شد. اما این معنایش این نیست که اگر نوفری از خیلی سکونی هم نرکت سبب باشه به قطعی همون جعبره اشعری که گفتیم اگر از عبدالله نمیون نرم کنه بله قبوله اما اگر از غیر عبدالله نمیون کنه گیر میکنیم چون مجبوره نمیشت این فائده مطلب. که ما نمیخوایم توصیل بعد بعض از آیان از این مطلب توصیه. فرق شوشن شد, شد. این رجالی داشت. ها، چه جوری؟ بیچ از اون و این مطلب توثیق نوفلی استفاده کردن. در نتیجه نوفلی هر جا که باشه تبعث. خود ما توصیه نجاج نوفلی نفهمی. خود ما چیزی که فهمیدیم این است که نسخه تکونی که نوفلی ناردونه قابل اعتماد نیست. این دو تا نکته پس اگر نوفلی از غیر تکونی ناردونه اعتماد کنه. می خب مبانی رو خوب درکت بکنید بعدم نشه سه اطل کلام علاق خیلی اینم به تحقیقاتی که با قولیشون راه های مختلفی رو ما رفتیم برای اسماس بساقت یا نفیر کتابی رو که خوندیم آهای خوری به بساقت بود مرحوم حاجی نوری هم غالب بود این کتاب هم غالب بود بقید مرموم توسته غالب بساقت گیرداش در بساقت این چهار تا مصدر با ما خوندیم. ان شاء الله عصر تا خودمون وارد بحث صلی الله علی محمد